من خوب من باز بیا خوب من باز بیا را با نفسی تازه از جمین خوش گرها نفسی تازه کنی خوب من باز بیا را با نفسی تازه جمی نه خوشا برخور نفسیت تو تکلی دلودی ترابت در برنامه های قبل مناظرات سلطان شیرازی و ادهی از علمای اهل تسنن ایالت پنجاب هند را شنیدید. مناظراتی که با توجه به روش خطیب شیعه در استناد به کتب اهل سنت باعث ایجاد موجی از علاقه به مذهب اهل بیت که در شهر پیشاور شد. جناب سلطان الواعظین در هر شب تعدادی از فضایل امیر را فقط با استفاده از کتاب‌های مورد قبول اهل سنت اثبات می کرد. در این بین پرسشی برای شیعیان پیشاور که میزبانان سلطان الواعظین هستند پیش آمده است بفرمایید میرزا یعوب خان اگر در حد معلومات حقیر باشد سوالتان را پاسخ می‌دهم. در این نوشبی که شما در حال مناظره با جناب حافظ و شیخ عبدالسلام هستید من هر شب منتظرم که شما حدیث شریف قدیر را برای اثبات امامت و ولایت بلا فصل مولانا علی علیه السلام قرائت بفرمایید. ولی ظاهرا جنابتان قصد دیگری دارید. شاید جناب صاحب اوزی برای این کار دارن که ما از آن بیخبریم. ببینید برادران من همان شب اول هم می توانستم به حدیث قدیر استناد کنم. ولی باید زمینه را فراهم می باید اول به آقایان تفهیم می کردم. پیامبر از همان آغاز رسالتشان در مواضع مختلف به خلافت و امامت امیرالمؤمنین تصریح کردند و بدون حدیث قدیر هم مقصود ما حاصل است یعنی قصد دارید امشب این کار را انجام دهید؟ اینگونه که از زواهر برمیآید آید حضرات دیگر توان ادامه مناظره را ندارند و بعید به نظر می رسد که بیش از این بتوان آنها را در پیشاور نگه داشت اگر سخنان آن شب نواب عبدالقدیر خان نبود تا کنون حتما میدان را خالی کرده بودند. خودم هم تصمیم داشتم به فضل الهی امشب حدیث قدیر را بیان کنم. البته این فقره ریزه کاری هم دارد که شاید مثل شبهای ماضی آقایان را کمی متغیر کند راستی؟ در که از شبهای قبل جنابالی مشغول شمردن هفت ای بودید که پیامبر و حضرت امیر نظیر یک دیگرند. در آن هنگام سخنانتان قطع شد مشتاقیم ادامه آن را بدانیم بله اول بگذارید امتحان کنم که مستمعین خوبی بودید یا خیر <تصفح> <تصفح> کدام یک از آقایان سه موزه اول را در خاطر دارد؟ اه... اگر اجازت فرمایید حدیر کنم اولین که در اصل و نصب نظیرم دوم بر اساس آیه تهارت در پاکی و تنظه نظیر یک دیگرم و سوم از حیث ولایت بر امت احسن و اما چهارم حضرت رسول و حضرت علی در ادای رسالت و تبلیغ دین نظیر همدیگرند که شاهد مثال قضیه فرستادن امیرالمؤمنین برای قرائت سوره براعت به مکه است مگر آنجا چه اتفاقی افتاد اول قرار بود کس دیگری این کار را انجام دهد ولی جبرئیل نازل شد و عرض کرد ادای رسالت نمیتواند بکند مگر خودت یا کسی که از تو باشد بنابراین رسول الله کار را به حضرت علی سپرد چندمی را باید بگویم؟ چهارومی را فرمودید، نوبه پنجمیست بله، پنجم این که به دلیل حدیث قدیر در مولا بودن بر مردم نزیر یک دیگرند و ششم به دلیل آیه مباهله به اعتراف شیعه و سنی نفس علی علیه السلام قائم مقام نفس حضرت رسوله زیرا که خدا برای حضرت امیر از تعبیر انفسنا استفاده کرده است. و هفتم در قضیه فتح باب مسجد پیامبر و علی صلوات الله علیهما نظیر هم دیگرند. داستان فتح باب چیست؟ قبلا بسیاری از صحابه از خانه های خود دری به مسجد باز کرده بودند. روزی رسول اکرم فرمان دادند تمام درها بسته شود مگر در خانه خودشان و در خانه حضرت امیر خواهش داریم ما را ببخشید شبها که گاهی تا قریب و صبح در مناظره هستید و افاظه ی کلام میکنید روزها نیز در منظر ما با سوالهایمان استراحت را از شما صرف کردیم والله برای اثبات حقانیت حضرت امیر حاضرم جانم را نیز بده این قلیل امور که اصلا به چشم هم نمیآید. آید انشاءالله خدا نیز ما را تایید کند انشاءالله, انشاءالله, انشاءالله, انشاءالله, انشاءالله, انشاءالله حدیفتی که شما قرارت کردید که پیامبر صلابات الله علیه در روز قدیر خم در منزلت علی کرم الله وجه فرمودند بر هیچ کس پوشیده نیست البته نبا این آب و تابی که شما ذکر کردید آب و تابی نبود حقیر ارز کردم وقتی رسول ازم می فرمایند هر کسی من مولای اویم، اینک علی مولای اوست و هفتاد هزار یا به قولی صد و بیست هزار نفر این حدیث را شنیدند؟ آیا معنایی غیر از نسب امیرالمؤمنین به امارت و امامت مردم میتوان از آن مستفاد کرد؟ شما در بین فرمایشاتتان سعی داشتید کلمه مولا را به اولاب تصرف معنا کنید که به مقصود خود برسید حال که ثابت شده مولا به معنای محب و ناصر و دوست است یعنی پیامبر فقط قصد داشتند به مردم بفرمایند که با علی دوست باشی؟ پیانبر چون میدانستند علی بسیار دشمن دارد به مردم توصیه کردند که هر کس مرا دوست دارد علی را نیز دوست بدارد یالالعجب یعنی از مردم برای دوستی علی بیعت گرفت آیا دوستی هم بیعت می تعجبی ندارد رسول اکرم می‌خواستند مطمئن شوند که پس از رهلتشان مردم علی را آزار ندهند و گرامیش بدارند. اگر حرف شما صحیح هم باشد که به فضل خدا بطلانش را ثابت خواهند کرد، پس چه خوب حق علی را گرامی داشتند. فدک را از اختیار همسرش خارج کردند. در خانه علی را سوزاندند. خودش را برای بیعت گرفتن کشان کشان به مسجد بردن خواهش دارم عواطف مردم را تحریک نفرمایید و استدلالتان را بفرمایید با چند قرینه ثابت می کنم که منظور از مولا همان اولا به تصرف است نه آماده استماییم و اگر مستند باشد میپذیریم اول نزول آیه 67 از سوره مائده که در آن آمده است ای پیامبر، را از سوی پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر چنین این نکنی، پیامش را نرسندی و خدا تو را از مردم نگاه می‌دارد. دلیلی دارید که این آیه در روز قدیر نازل شده؟ بله، فهول علمای خودتان از قبیل سیوتی، امام فخر رازی امام سعلبی قاضی شوکانی ابو جعفر تبری شیخ سلیمان بلخی شافعی و بسیاری دیگر این مطلب را در کتب خود تایید کردند که این آیه در روز قدیر خم نازل شده است. حال سؤال من این است آیا امر دوستی با علی به تهدید احتیاج دارد؟ جناب ساید برای افرادی چون من بازهتر بفرمایید که تهدید چه بوده است جناب نواب خدا به پیامبر می گوید اگر این کار را نکنی رسالت خود را تبلیغ نکرده بر هر عاقلی از هر دین و مذهبی که میخواهد باشد واضح است که آن امر مهم عظیم که تالی تلو مقام رسالت بوده قطعاً امر امامت و وسایت و اولا به تصرف بودن از این آیه که بگذریم به آیه الیوم علیام اکمل تو لکم میره سب کنید صاحب مسلم است که این آیه در روز عرفه نازل شده و اهدی از علماء سخنی از نزول در قدیر خم ندادم چون قسم خوردم که را از انصاف بیرون نگذارم قبول دارم که ادهی از علمای شما معتقدند این آیه در روز عرفه نازل شده چه عجب در این ده شب یک بار سخن ما رو تصدیف کردید؟ ملاک حقیر روایت است و استدلال اگر سخنی از شما را تایید نکردم، بر من ایرادی نیست باید به خودتان مراجعه کنید پس با این احوال به این آیه نمی توانید استناد کنید ولی اده دیگری از علمای شما به نزول این آیه در قدیر معتقدند و حتی ادهی گفتند این آیه در هر دو موزه نازل شده نمیدانم چرا به اثبات مطالب شما که میرسد استثنایی پیدا می شود. فقط همین مورد نبوده است سبت ابن جوزی میگوید احتمال دارد این آیه در هر دو موزه عرفه و قدیر نازل شده باشد چنان که بسم الله الرحمن الرحیم هم در مدینه و هم در مکه نازل شده است آیا ابن جوزی هم شیعه بوده؟ صاحب قبله آیا شمار کسانی که آیه را منحسرن نازل شده در قدیر می دانند بسیارند؟ بله و ادهی از آنها را که در حافظه دارم عرض می کنم بفرمانیم ابون عیم اسفحانی سیوتی ابن کثیر شامی ام. ابن مغازلی ابو سعید سجستانی و بسیاری دیگر همچون امام احمد ابن همبل قضیه قدیر را به تفصیل آوردند و حتی دعای پیامبر صلوات الله علیه و آله را زمیمه کردند که به خدا عرض کردند خدای بزرگ که دین را کامل و نعمت را تمام نمود به رسالت من و ولایت علی ابن طالب راضی شد باز هم باید این مطلب را عرض کنم و از آقایان علما بپرسم چرا برای اولین بار است ما این فقرات را می جناب شیخ عبدالسلام از شما پرسشی دارم آیا قبول دارید هوا آن روز گرم بوده و قدیر خوم در منطقی بی آب و آبادانی قرار داشته؟ در این مطلب شکی نیست جناب حافظ شما آیا میپذیرید که آن مکان پیش از آن محل توقف قافله ها نبوده؟ آیا تایید میفرمایید حضرت رسول دستور داد کاروان‌هایی که جلوتر رفتند برگردند و صبر کنند تا بقیه برسند؟ آری، کم و بیش چنین مطالبی در تاریخ آمده است. جناب نواب، شما بگویید. آیا عقلا درست است در چنین شرایطی رسول اعظم مردم را جمع و آن خطبه طولانی را ایراد کنند و دو آیه در این موضع نازل شود فقط برای اینکه از مردم برای دوستی علی ابن نبی طالب بیعت بگیرند؟ الله با استدلال هایی که شما افاضه کردید اگر کسی کلمه مولا را به دوستی معنی کند لجاج و اناد را به قایت رسندند. حال آیا شکی باقی مانده که مولا به معنای اولا به تصرف است و پیامبر که جانم فدایش علی صلوات الله علیه را به امامت و ولایت مردم برگزیده است؟ ولی هنوز تکلیف کلمه مولا کامل معلوم نشده نظر متکلمین غیر از نظر شماست تناه میبرم به خدا از تأصب پناه میبرم به خدا از لجاجه تصدیق می کنم که توانایی شما در سهر عقلها بسیار است ولی اگر پاسخ اشکال جناب شیخ عبدالسلام را بفرمایید ممنون می شوید. ابن تلهی شافعی و ابن جوزی برای کلمه مولا معانی متعددی گفتند از قبیل اولا به تصرف، ناصر، دوست و غیره ولی هر دو معتقدند در موضع قدیر فقط معنای اولا به تصرف صرف می و باقی معانی با کلام رسول الله و وضع و حال آن روز مطابقت ندارد همین که اعتراف می کلمه مولا معانی متعددی دارد پس باید بپذیرید اجازه ندارید فقط یک معنای آن را اختیار کنید تا نتیجه دلخواهتان را بگیرید خودتان بهتر میدانید وقتی کلمه چند معنی دارد معنی واحد در آنها حقیقی و باقی معانی مجاز است و در اینجا اولا به تصرف معنی حقیقی کلمه مولا است. اگر حدیث قدیر به این سراحت به ولایت علی کرم الله وجه دلالت دارد چرا حضرتشان بعدن به این مسئله اشاره ای نکردند اشاره کردند و خودتان بهتر میدانید که معروف ترینش قضیه رهبه است که امیر المؤمنین مردم را سوگند داد که شهادت دهند حدیث قدیر را شنیدند از میان آنها سی تن از صحابه کبار برخاستند و شهادت دادند که دوازده تن از آنان از بدریون بودند آیا باز هم شبه باقی مانده؟ ولی باز هم بعید به نظر می رسد که پیامبر چنین مفهومی از مولا را در نظر داشتند آیا شنیدید که حضرت رسول قبل از خطبه فرمودند آیا من اولا به تصرف نیستم به شما از خودتان بسیاری از علما چنین فقرهای ای را رد کردند چگونه رد کردند در حالی که امام احمد بن حنبل ابن جوزی محمد بن یوسف گنجی شافعی ابو نعیم اصفهانی و دیگر علمای خودتان این معنا را با عبارات مختلف رد کردند بارت هم که پیامبر فرموده باشند شما قصد دارید چه نتیجهی بگیرید یعنی باید باز هم توضیح واژه‌ها بدهم وقتی قرینه کلام در خود حدیث اثبات مرام می‌کند که پیامبر از مولا مفهوم اولاب تصرف را در نظر داشتهاند دیگر چرا بحث کردن‌های بیهوده آیا آقایان تمایل دارند برایشان شعر بخوانم چنین مجلسی و شعر و شاعری بی رفت به موضوع مورد بحث نیست بخوانید جناب صاحب حتما منظوری دارید که با قرائت شعر حاصل می شود. البته این شعر عربی بوده است و من ترجمه آن را میخوانم. روز قدیر خم نبی اکرم ندا می کرد و باید ندای او را شنید پس به علی فرمود برخیز یا علی به درستی که راضی شدم بعد از من تو هادی و امام خلق باش. شیعیان برای اثبات منظورشان از این اشعار بسیار سرودند این چه دلیل نمی شود آیا می دانید این شعر را که و در چه زمانی سرودند؟ نام و زمانش را نمی دانیم. فقط می دانیم شیعی بوده که قصد گمراه کردن ای را داشته باز هم زود قضاوت کردید این شعر را حسان ثابت شاعر معروف عرب در روز قدیر خم و در حضور حضرت رسول صلی الله علیه و سرود سروده در قدیر همون سال؟ بله همون سال خدا را گباه میگیرم اگر منظور پیام بر چیز دیگری بود به او میفرمودند حسان منظور من از امام و هادی اولا به تصرف نبوده و فقط دوستی مردم با علی را در نظر داشتند ولی حضرت چون این کاری نکردن شک ندارم این فقره دیگر از جعلیات شیعان است که خواستند برای مدعای خود شاهدی در ادبیات عرب نیز داشته باشه <تصفح> ای کاش آقایان به جای این همه تعصب تورقی در کتب خود میکردند و این این وقت مجلس را نمیگه در این چند شب متوجه شدیم جناب عالی هم حافظه خوبی دارید و هم به کتب ما مسلطید ولی گمان می کنم این بار اشتباه کرده اید و کتب خود را با ما اشتباه گرفته اید به فضل خدا اشتباه نکردم قضیه سرودن شعر حسان و حتی متن آن در کتب حافظ احمد ابن موسا موفق ابن احمد خارزمی سیوتی ابو الفتح نتنزی ابو سعید سجستانی و بسیاری دیگر آمده است به هر حال آنچه باید گفته میشد گفته شد و آنکه باید درک می کرد، فهمید بقیه را به خدا وامیگذارم و از اینکه در این ده شب وصنه به خرج دادید کمال امتنان دارم گیتا گیتا این لباس خوب است همان قبلی هم خوب بود حال چرا این همه رنگ رنگ لباس روز میکنی؟ خوب باید لباسی مناسب پیدا کنم میدانی امروز, امروز روز تولد دوباره من است گیتا این چه؟ این کفش را بپوشم بهتر است یا،, یا آن نلین سپیشان؟ عبدالقدیر خان شما انقدر برازنده و بلند بالایی که با هر لباسی که بپوشید با شکو و با آبو حدیر خب گیتا خب تو هم چه آماده میخواستم خب... <تصفيق> برای آخرین بار بگویم موادو به خاطر طبعیت از من به این قضیه راضی شده باشی. که این امر تقلیق بردار نیست حقیقتا من اینگونه به نظر میرسم آیا ندیدید من همراه شما هر روز روزنامه را خواندم و با شما درباره مطالب مطروحه هر شب بحث کردم قصدی نداشتم میدانستم گیتایی که من میشناسم بدون تحقیق کاری انجام نمیدهد فقط فقط خوب خواستم برای آخرین بار اتمام حجت کرده باشم موا نمی کنید کمی دیر شده میترسم جناب صاحب قبله منتظر بمانند نگران نباش دروش که در منزل ما در ان به موقع می بروی غیر از نحوی سخنان شما و مواضعی که اتخاذ می کردید حدوداً از شب ششم یا هفتم احساس کردم که تغییراتی در شما در شرف وقوع است <تصحيح> ساقب نه تنها من که بسیاری دیگر از برادران همان شب هفتم می خواستیم خدمت برسیم و به دست شما مذهب حقیقی اهل بیت را اختیار کنیم ولی ولی سرا دیدیم تا پایان مناظره صحب کنیم اگر اجازت فرمایید قبل از هر کاری برای تیمن و تبرک حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله تا بعد به کار اصلی برسیم مزید بیناهییست. بفرمایید. پیامبر به سندی که شیعه و سنی آن را تصدیق کرده اند، فرمودند من خانه حکمتم و علی در آن می باشد. هر کس اراده دارد از حکمت من بهره بردارد به در خانه علی برود خوشحالم شما و سایر برادران و خواهران از این پس ولایت علی و فرزندان بزرگوارش را پذیرفتید انشاءالله در سایی انایات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا موفق و پیروز باشید انشاءالله نمایشی که در چهار قسمت تقدیم شما شد گزارشی بود از ای که حدود 90 سال پیش بین سلطان الواعظین شیرازی و ادهی از علمای اهل سنت در پیشاور برگزار شد در پایان این مناظره ای از مردم پیشاور به مذهب شیع مشرف شدند. شما میتوانید مشروه این مناظره را در کتاب شبهای پیشاور مطالعه کنید سازندگان این مجموعه نمایشی ضمن التماس دعای خیر از شما گرامیان آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستند.